به نام خدای یگانه مهربان سلام در مکتب افسان شناسی مردمی رو به چهار گروه تقسیم کردند افسانه‌های های سهرامیز، افسانه های شخی افسانه مسئ ها که درباره حیوانات و افسانه‌های های معیشتی، هر یک از افسانه ها ویژگه های خاص خودشون رو برن در هزار افثانه, افثانه ای رو از مردمان کشور ایتالیا براتون نقر میکنن به نام بلد الموندو برگرفت از کتاب افسانه های مردم ایتالیا اثر آن مکدانل با ترجمه از رزوان خرمیان. در گذشتههای دور در سرزمین ایتالیا پادشاهی با چهار فرزندش به خوبی و خوشی زندگی میکرد پادشاه سه دختر و یه پسر داشت روزی از روزها اتفاق بدی رخداد باد شدیدی وزیدن گرفت و برای چند ساعت زمین از گرد و غبار پوشیده شد وقتی که گرد و از اونجا گذشت سه دختر پادشاه ناپدید شدن و هیچ اثری از اونها باقی نمون که نموند پادشاه دستور داد برای پیدا کردن دخترانش همه جا رو جستجو کنن اما هیچ رد پایی از اونها دیدن نمیشد. هر روز پدر و پسر برای از دست دادن سه شاهزاد خانم گریوزاری می کردن و اندوهگین می شدن غم و غصه داشت کلسینو پسر پادشاه رو از در می آورد چون نمیتونست دوری خواهرانش رو تحمل کنه و هر روز غمگین و می میشد. پادشاه که میدید پسرش برای خواهرانش خیلی ناراحته از اون خواست برای شکار به جنگل بره تا شاید یک کمی غم و اندوهش رو فراموش کنه. یه روز وقتی کلسینو به تنهایی در جنگل قدم میزد پیر زنی رو دید که با موهای برندش از درختی آویزون شده بود. اون از درد فریاد میکشید. اما فریادش هر لحظه ضعیف و ضعیفتر طوری که انگار داشت از درد و ترس جون میداد. داستان از این قرار بود. پیرزن داشت از اونجا میگذشت. پسر بچه ای رو دید که روی شاخه ای نشسته. شاخه از سنگینی وزن پسر به زمین رسیده بود. یه دفعه یکی از دوستان اون پسر بچه که پسر شیطون و شروری بود، موهای پیرزن رو گرفت و دور شاخه پیچید تا اینکه دوستش خودش رو روی زمین انداخت. ها خیلی زود از اونجا دور شدن و پیرزن با موهای آویزون همونجا موند و حالا از شدت درد فریاد میکشید. کلسینو وقتی پیرزن رو دید خودش رو از درخت بالا کشید و بعد به شاخی اون آویزون شد تا شاخه سنگین بشه به پایین بیاد بعد موهای پیرزن رو از دور شاخه باز کرد و اونو پایین آورد بعد هم به اون دلداری داد و متوجه شد پیرزن خیلی بی و فقیره بنابراین مقداری پول هم بون داد پیر زن گفت او چگرم جوون مهرمون امیدوارم شما با شاهزاده بزرگ بلادل استواج کنید گلسینو نزد پدرش برگشت و گفت پدرجان دعای خیرت رو بدرقی راهم کن و دستور بده اسبتون تندروی برای سفری طولانی برام آماده کنن من میخوام تمام دنیا رو برای پیدا کردن بلادل جستجو کنم اون فقط باید همسر من بشه پادشاه گفت آه، بسیار خوب ولی پسرم چرا این داری؟ به بعد سعی کرد با صحبت کردن پسرش رو آروم کنه اما کلسینوی افثانه ما تصمیم خودش رو گرفته بود تا اون روز کلسینو با اسبش از دروازه های غز خارج شد و رفت تا دنیا رو برای پیدا کردن بلدل جستجو کنه بعد از مدتی به جنگل رسید شب فرار رسید و کلسینو خسته بود اسبش رو به درختی بست و از درخت بالا رفت روی شاخه بزرگی دراز کشید و به خواب رفت اما وقتی که خواب بود حیوانات وحشی توی جنگل بو کشیده بودن و قبل از اینکه صبح فرا برسه و اون بیدار بشه، اسبش رو تکه تکه کردن. اسب بیچاره. کمسینو که ای نداشت با پای پیاده به راه ادامه داد. راه اون از میون بیابون وسیع میگذشت و کم کم، شب دوباره فرا رسید کلسینو شاهزادی افسانه ما همینطور که داشت دنبال سرپناهی میگشت نوری رو دید که در تاریکی چشمک میزد اون فاصله خودش رو به کلبه رسوند و در زد صدایی از داخل فریاد زد چه کسی اونجاست کلسینو گفت مرد جوونیم که راهم رو گم کردم صدا گفت چه میخوای کلسینو جواب داد جایی میخوام تا یک شب در امون باشم صدا گفت من نمیتونم اجازه بدم داخل بیای. اینجا خونه باد بزرگه کلسینو گفت چرا نمیتونید من باید امشب رو اینجا بمونم و دوباره در را کنید سرانجام زن جوان زیبایی در رو باز کرد و پرسید چی میخوای؟ کلسینو جواب داد من دنبال بلا میگردم اجازه بدین تا صبح اینجا بمونم اما شما کی هستید؟ صداتون برای من خیلی آشناست زن گفت من همسر باد بزرگم کلسینو رفت توی خونه و اونها در روشنای خونه هم را رو شناختن. بعد اون خواهرش، صوفیا بود که در طوفان غیب شده بود صوفیا با نگرانی گفت برادر عزیزم هر لحظه ممکنه همسرم بات بزرگ سر برسه واکه تو رو اینجا ببینه با یه فوتو چندی که میکنه کلسینا گفت پس چیکار کنم خواهر صوفیا جواب داد باید قبل از اینکه همسرم باط بزرگ سر برسه یه جایی پنهون بشی کلسینا با نگرانی گفت پنهون بشم کجا سوفیا با گفت تو یه گنجه تو یه گنجه زود باش و بعد برادرش رو تو یه گنجه پنهون کرد و نفسی به آسودگی کشید باد بزرگ به خونش برگشت و هوا رو بو کشید و به همسرش سوفیا گفت بوی آدمیزاد به مشامن میرسه کی اینجاست کسی اینجاست همسرش جواب داد آدمیزاد؟ نه عزیزم توی این بیابونه براهود پشم پر نمیزنه چه برسه به آدمیزاد؟ باد بزرگ پرسید پس این بویی که مشام منو پر کرده چیه؟ همسرش لبخندی زد و گفت اه اه این این بوی غذای خوشمزهایه که برای تو درست کردم بعد غذای اونو براش کشی باد بزرگ بعد از خوردن غذا اخلاقش بهتر شد بعد سوفیا به خودش جرأت داد گفت ازیزم اگه اگه الان مردی به اینجا بیاد تو تو به اون آسیبی نمیرسونی؟ باد بزرگ دهن دره‌ای کرد و گفت امشب نه خیلی خوابم میاد. اون وقت سوفیا به آرومی صدا زد برادر برادر عزیز من، "کلسینا، بیا." کلسینو آروم از گنج بیرون اومد و خطاب به باد بزرگ گفت سلام من کلسینو هستم مزرد میخوام علی جناب من اینجا دنبال سرپناهی میگشتم و خواهرم سوفیا رو که برای از دست دادنش عزادار بودم پیدا کردم من خیلی خوشحالم که همسر خواهرم همسری قوی و بزرگه این باعث افتخار منه باد بزرگ از حرفهای معدبانه شاهزاده کلسینو خوشش اومد شاهزاده ادامه داد آری جناب من به دنبال شاهزاده بلادل میگردم شما میدونید اون کجا زندگی میکنه باد بزرگ فکری کرد و گفت نه هرکس دربارهی اون چیزی نشنیدم شاهزاده کلسینو گفت قربان من باید اونو پیدا کنم شما هیچ کمکی نمیتونید به من بکنین؟ باده بزرگ فکر کرد و گفت من که نه ولی خدمتکارم نسیم رو میفرستم تا پیداش کنه چند لحظه بعد نسیم از پنجره از سوراخ کلید و از روزنهای در وارد شد باده بزرگ گفت نسیم مأموریت تو اینه که به سلامت بری و خبری از شهزاد بلا بلادل بیاری نسیم بلافاصله رفت و بعد از مدتی نفس زنان برگشت کارشو از همیشه سریعتر و سختتر انجام داده بود اما بلادل رو پیدا نکرده صبح روز بعد کلسینو میزبانانش رو که به اون سفارش کرده بودن برای جستجو از باد شمال کمک بگیره تر کرد اونها راه رو به اون نشون دادند کلسینو رفت و رفت و رفت تا به گوشه دیگه ای از جان رسید و سرانجام خونه ی باد شمال رو پیدا کرد در اونجا باد شمال و خواهر دومش اولمپیا رو دید اونها با گرمی از ش استقبال کردن باد شمال هم هرگز اسم بلادل رو نشیده بود اما با این حال نسیم رو برای پیدا کردن بلادل فرستاد و نسیم بعد از سه روز جستجو به دور دنیا بدون هیچ چیزی برگشت هیچ راهی بهجز ادامه سفر برای شاهزاده کلسینو باقی نمونده بود باد شمال گفت اگه من و باد بزرگ نتونیم به تو کمک کنی حتما شاهزاد بلادل به سختی پیدا میشه گلسینو گفت پس پس آلی جناب من باید چیکار کنم باد شمال گفت اوه فقط یک راه وجود داره و اونی که به قصف خورشید بزرگ بری و از اون کمک خواهی بله این تنها پیدا کردن شاهزاده بردله کلسینو، آمادی رفتن به قصر خورشید شد قبل از رفتن باد شمال به اون سوتی یاد داد که صدای خاص و بسیار ریزی داشت و به اون گفت اگه به خطر افتادی این سوت رو بزن وقت تمام باد بعد از گذشته روزها شاهزاد کلسینو به قصر خورشید رسید و خواهر کوچیکش پریماورا در خونه رو به رویون باز کرد و با ناباوری و خوشحالی گفت آه آه آه آه کلسینو برادر عزیزم اینجا چه کنی؟ بله اون همسر خورشید پریما پریماورا گفت برادر تو باید فوری اینجا تر کنی اگه همسرم خورشید از راه برسه تو رو با آتش میسوزونه. سوزونه فکری فکری کرد صبر کن، صبر کن. صبر کن من اینجا مرهمی دارم که از وقتی با خورشید ازدواج کردم خودم رو به اون آغشته میکنم تا هیچ آسیبی به من نرسه. بیا، بیا این مرهم رو بگیر و تمام بدنت رو با اون چرب کن. کلسینو هم این کارو کرد و منتظر رسیدن خورشید شد. سرانجام خورشید شاه بزرگ با شکوه و پرقدرت به خونه اومد چشاش مثل کوره ای افروخته بود با اون مرهم جادویی مرد جوون از شعله داغ خورشید در امان بود پریماورا کلسینو رو به همسرش خورشید شاه بزرگ معرفی کرد وقتی خورشید حرف های شاهزاده کلسینو رو شنید گفت من دوشیزه بلدر رو میشناسم اما خیلی وقته که اونو ندیدم و بعد اضافه کرد هیچ کسی در دنیا نمیتونه از نظر من پنهان بشه اینجا بمون جناب کلسینو من دوشیزه بلدر رو براتون پیدا میکنم کرشید پرتوهای نورانیش رو به همه جا فرستاد بعد از گذشته سه روز محل اقامت بلادل پیدا شد اما خورشید گفت اونجا خطرناکه و نمیتونی به تنهایی بری من هم باید با تو بیام بعد چندتا از پرتوهای کوچیکش رو مثل زنجیری به هم متصل کرد و به کلسینو گفت به اون آویزون شو خورشید در مسیر تلایش دور دنیا حرکت کرد و مرد هم از رشته های خوشید آویزون بود اونها به همین ترتیب به سرزمینهای دور و دورتر رفتند تا اینکه روزی جادهی طولانی رو دیدن که به قلعه می رسید در کنار جاده دوازده شیر درنده در نگهبانی می خورشید گفت دوست شجاع من روز داره به پایان میرسه و من باید غروب کنم. تو تنها میشی. اما از شیرها میترسی؟ اونها به تو آسیبی نمیرسونن. شجاعانه در امتداد جاده راهت را ادامه بده و اگر خطری احساس کردی زود بزن. خوشید اونو آروم بر زمین گذاشت و به سمت مغرب کلسینو سرش رو بالا گرفت و با آرامش در امتداد جاده راهش رو پیش گرفت شیرها با چشمهای زردشون با حرس و ولد به اون نگاه میکردند اما به حمله نکردن. در بزرگ آهنی قلعه داشت بسته میشد که کلسینو به سختی خودش رو وارد قصد کرد بعد از چند راه رو گذشت تا به سالنی بزرگ و مجلل رسید در وسط سالن دختری زیبا نشسته بود کلسینو فهمید اون کسی نیست جز شاهزاده بلادل بلادل با دیدن کلسینو به سمت اون رفت و با گریه گفت آه چقدر منتظرت بودم ما باید از اینجا بریم وقت ما کمه بعد از اینکه شاهزاده والورست داخل قلعه بشه تمام تلسمای اینجا شکسته میشن، بیا بیا سودتر از دوشیم چند لحظه بعد شاهزاد کلسینو و شاهزاده بلادل هر دو فرار کردند کلسینو <مکالدل> <مسقی> <مسقی> <مسقی> <مسقی> و بلادل همونطوری که می در حای فلزی تبدیل به مقبا و شیرها هم تبدیل به مجسمه های سرد شدند یه دفعه صدایی شنیدن که کمک میخواست در یک لحظه جوانی رو دیدند که به شاخه درخت بلوطی بسته شده بود اون فریاد میزد منو آزاد کنید منو آزاد کنید التماس میکنم منو آزاد کنید کلسی خواست به جوان کمک کنه که یه دفعه فریاد زد نه نه این کار رو نکن اون اون بالرس بچه من اونو میشناسم. اما کلسینون قلب مهربونی داشت و چون که خودش در اون لحظه بسیار شاد بود نمیتونست ببینه که دیگران در عذابن بنابراین ایستاد و چاغوی رو از جیبش بیرون کشید و زندانی رو آزاد کرد اما افسوس به محض اینکه اون رو آزاد کرد خودش اسیر شد هیچ کس به غیر از بلدل نمیتونست اون کمک کنه اما جوون برجنس یعنی ونو دستگیر کرد و بلادل رو به جای اولش یعنی قلعه برگردند. وقتی از میون شیرها رد شدند اونها دوباره وحشیانه میقوریدند در فلزی دوباره ترس شدند والورس جنس اون رو به اتاقی با هفت دیوار براند و هفت در و هل داد و گفت <تصفيق> باید بقیه ی عمرت رو اینجا بمونی کلسینا من پسر جادوگری هستم که تو رو توی قلع زندانی کرده تو باید به ازدواج با من راضی بشی بلا گفت هرکس هرکس این کار رو نمی کنم و تو همیشه زنده نمی مونی. وقتی از دنیا رفتی من آزاد میشم آزاد والورس خنده ای کرده گفت <تصفيق> من بمیرم کشتن من تقریبا غیر ممکنه کلسینو برای کشتن من باید کارهای زیادی انجام بده مثلا باید در برج بلندی رو که در وسط دریا قرار داره بشکنه و وارد اونجا بشه پرنده ای رو که اونجاست بگیره بعد از کمی سکوت ادامه داد و گفت من وقتی می میرم که تمام این شاکار انجام بشن پس تو باید حالا حالاها منتظر بمونی بنادل توی دلش امید داشت که کلسینو یه بار دیگه اونو نجات بده در همین موقع کلسینو که اسیر درخت بلوت بود فریاد کشید کمک کمک کمک اما بیفاگده بود کسی به کمکش نیومد سرانجام سوتی رو که باد شمال به اون یاد داده بود زد و در یک آن بادهای بزرگ و کوچیک در اطرافش پیدا شدند و یک صدا گفتند ما به تو کمک میکنیم نگران نباش اونا وقتی دیدن کلسینو به درخت بسته شده همگی با هم برای اون تلاش کردند خورشید تلاش کرد تا تناب رو بسوزانه اما بیفایده بود بادها درخت رو تکون دادند اما باز هم بیفایده بود بعد خورشید شئلش را به اتاق بلادل فرستاد تا با اون مشورت کنه. بلادل تمام چیزهایی رو که والورس برای اون فاش کرده بود بازگو کرد خورشید و بادها به سمت برج بلند وسط دریا پار شدند خورشید راه را نشون میداد بادها طوفان بزرگی اطراف دیوارها و برج راه اندیختند تا اینکه درها باز شدند و خورشید داخل رفت و از گرمای اون پرنده بیرون پری. اون به این طرف و اون طرف پرواز میکرد و بادها پشت سرش بودند تا اینکه پرنده را محکم به صخره کوبیدند درست در همون زمان که پرنده اسیل شد، پسر جادوگر مرد و روی زمین قلعه جادو شده افتاد، در حاگ زندان بلد و زنجیر کلسین و ناپدید و شیرهای جاده برای همیشه تبدیل به مجسمه شده، طولی نکشید که مراسم عروسی شاهزاده کلسینو و بلادل برپا شد در جشن عروسیشون چراغ و شمی روشن نشده بود چون خورشید با گرما و نورش توی تالار میدرخشید و با تا زیباترین آهنگهای دنیا رو می نباخدند. میهمانان اصلی پادشاه و سه دخترش بودند و هزاران نفر برای دیدن بلادل که شهرتش رو شنیده در جشن حضور داشتند افسانه ایتالیای بلد رو براتون نقل کردم برگرفته از کتاب افسانه های مردم ایتالیا نوشته ای آن مکدانل با ترجمه از رزوان خرمیان. افسانه ها شایستگ درنگ و تعملند و مایه های تربیتی، فرهنگی، حتی استور شناسی فراوانی هم دارن پس قدر افثانه های عرضشمند کشورن رو بدونیم و از پیام ها و حکمتهای نهفته در آنها درس بگیر هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده زینت سالپور. راستار سهیلا کریمی اقدا، اجرا مهران دوستی صدابردار محفام پرتو تیگه کننده زهرا عبدالله زاده. افسانه دیگر بدرود